اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وبعد قال الحسين عليه السلام من كان فينا بادلا مهجته وَمَا أَبَيْنَ نَعْلَالِقَا إِلَّا هَنَفْسًا فَلْيَرْحَالِ مَعْنُومُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وعلى الارواح التي حلات بثنائك عليك مني سلام الله عبدو مبقيت وبقي الليل والنهار هم ابو محمد سلام وعلى اصحاب الحسين جميع ورحمه الله وبركاته بر محمد و محمد صلوات خداوند مهربان ارض ها را از همگان ما و شما قبول بفرماید و برای همه عزیزانی که هر نوع تلاش و زحمتی را در راستای دستگاه حسینی کشیدهاند و میکشند امنیت گرفتهاند پراشی کردند سینه کردن، نوحه خوندن، روزه خوندن خداوند از همگان ما و شما قبول بفرماید ذخیره قبر و قیامت همگان بگرداند به حرمت صلوات بر محمد و آله محمد وقت ما نگاه کنیم به واقعه عظیم و و کربلا یکی از مسائلی که بسیار به شکل برجسته به همگان ما و شما گوشت زد می شود مسئله مسئولیت پذیری سید وقت نگاه به صحنه آشرا بیاندازیم هر کس بر اساس مسئولیتشون رفتار کرده است و گذشته از همه آوردن آقا و مولا خانواده اش رو همراه خودش در سرزمین کربلا به معنی مسئولی است بر این اساس همه مسلمانان شایسته و بایسته است که این نکته رو درک کنن که همگان مسئولند کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته همگان شما نسبت به همدیگر مسئولیت دارید این متن نص سره روایت شریفه هست واقعه کربلا پورست از نکات این چونینی در قسمت مسئولیت باید یاد آوری کرد اولین مسئولیتیه که از واقعیه عظیم آشرا پدید میآید مسئولیت حفظ از ارزش هاست همگان مسئولند که از ارزشها باید حفاظت کنند و نگهداری کنند در زیارت آشرا میخوانیم زیارت زیارت وارد اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة و امرت بالمعروف و انا عن المنکر حسین جان شهادت میدهم در پیشگاه خدا که تو نماز رو به پا داشتی شهادت میدهم در پیشگاه خدا که زکات رو پرداخت و کردی و شهادت میدم در پیشگاه خدا که امر به معروف و نهی از منکر کردی همه اینها به معنی مسئولیت پذیریست و روحیه مسئولیت پذیری باید در همگان ما ایجاد شود پس جامعه که باید جامعه آشرایی بگردد و جامعه حسینی بشود یکی از ارکان این جامعه حس مسئولیت است آدمای بی‌باک آدمای بی‌توجه نمیتواند از خودش یک انگیزه حسینی در جای گذاشته باشد و جامعه که دارای افراد بباخت باشد جامعه آشرائی شده نمیتواند پس چه باید کرد؟ سه نکته را در قسمت مسئولیت پذیری باید در نظر داشت یک آگاه بخشی با سخنان که همون امر به معروف و نحیت منکر هست وقتی ما می‌بینیم در اطراف ما اشخاصی هست که نمیدانند از حقایق و واقعیت ها یا به حس است به انگیزه هست، بر آگاهان امور لازم است که با اینها صحبت کنند و حس انگیزه را به اینها تذرق کنند جوان نباید لنجور باشد، یک مؤمن نباید همطور افتاده باشد مؤمن پر از اینرژیست جوان پر از اینرژیست به تعبیر امروزی باید حرکت از خودش نشان دهد اون جوان و اون مؤمنی که حرکت ندارد همون است که آهسته آهسته دارد شر میخورد روحیه حرکت پذیری و مسئولیت پذیری در جامعه ایمانی در اوجش باید باشد دو کار و تلاش و حرکت مؤمن نباید در خانهاش بنشیند و منتظر قضا و قدر بماند یا منتظر این بماند که دیگران بیاید کمکش کند نه مؤمن خودش خودش رو به زحمت میاندازد تا دیگران در آسایش زندگی کند سه کمک مالی کمک مالی معنیش این نیست که مستقیم پول پرداخت شود کمک مالی که در اسلام مورد توجه قرار گرفته است دل کشیدن و عشق کشیدن از مال هست دل بریدن از مورد هاست قرآن کریم می‌فرماید: لن تنال البر حتی تنفق مما تحبون شما بیر و تقوا را تجربه نمیتوانید کنید مگر این که از آن چیزی که دوست دارید از آن دست بردارید و از آن انفاق کنید وقتی عروسی حضرت زهرا سلام الله علیها بود سائل آمد به تعبیر ما و شما گدایگر آمد درخواست کرد که برای من یک پیراهن کهنه بدید حضرت زهرا خواست یک پیراهن بده یادش از همین آیه آمد او پیراهن عروسیش رو به سائل داد به گدا چرا چون پیراهن عروسیش رو بیشتر دوست میداشت لن تنالو البر حتی تنفق مما تحبون این هست مسئولیت پذیری پس جوان ما باید تحرک داشته باشه اگر جوان ما بی تحرک باشه جامعه همینطوره آحسته آهسته رو به سقوط به پیش خواهد رفت بزرگان ما هم او روحیه تحرک که قبلا در جوانی داشت فعلا حفظ کند و به پیش حرکت کند دوام این که از واقع آشرا باید توجه کرد و یاد گرفت پیروی از رهبری ربانی است در دنیا چه در زمان فعلی چه در زمان قدیم بودن کسانی که خیش را پیشگام مردم قرار می و مردم را به هر جهت و به هر سو سوق می و رهنمود نمود می کردن. در این میان از کی باید پیروی کرد؟ از اون رهبر ربانی باید پیروی کرد نه از رهبر ظالم نه از رهبر خودخواه و نه از رهبرانی که خون مردم را توسط خود مردم میچشند. رهبر باید الهی باشد رهبر باید ربانی باشد اون رهبر که مردم را به سوی خدا دعوت کرد از اون رهبر باید پیروی کرد مسئله بعدی و سومین نکتهی که از واقع آشرا میتوان درس گرفت انتخاب راه سالم و راه بردی است امام علیه السلام عجیب راه را برمیگزیند در ظاهرش امام مغلوب می شود ولی آمده عراق را انتخاب کرده چرا؟ چون عراق در اون زمان آباد بود. ما وقت بعد از حادث آشرا نظر میافکنیم. حوادثی که اتفاق افتاده از عراق اتفاق افتاده. کوفه آباد بوده از خیزش های انقلابی از عراق اتفاق افتاده است بعد از این که امام زین العابدین علیه السلام و سلام به مدینه تشریف بردن خیزش های دیگر از جای جای کشورهای اسلامی به وجود آمده است این بیانگر این است که وقتی ما یک راه را انتخاب می‌کنیم راه ما باید درست و راه بردی باشد و آخر نقطه ای که در یک جامعه آشرای لازم است یاد آوره بشه پرهیز از رضایل هست پرهیز از بدی یک جوانی یک مؤمنی که از رزایل پرهیز نکند از زشتیها دوری نکند نمیتواند یک جوان حسینی و یک جوان آشرایی باشد و اینها نمیتوانند یک جامعه آشرایی را تشکیل بدهد بر این اساس اگر ساهه ما، اگر جامعه ما میخواهد جامعه آشرایی تشکیل بدهد از خودش، یک جامعه حسینی و اسلامی تبار دهد، این چهار نکته نکته اساسی است. یک روحیه مسئولیت پذیری، دو، روحیه انتخاب از راه درست و سوم پیروی از رهبر ربانی و چهارم پرحیز از رزایل و بدیها وقتی ما در حادثه آشرا نگاه کنیم اینها خیلی واضح هست شما میدانید در روز تاسعال روز نهم محرم دو تا نامه به حضرت ابلفضل و برادرانش رسید یک اماننامه مستقیم از طرف عبیدالله ابن زیاد از کوفه آمده اماننامه دوم شمر است که از لشکریان همون روز آورده در روز نهم شمر آمده صدا میزند کجاست خواهرزادگان من اینجا نقل میکند اول فضل شنید ولی سکوت کرد جواب نداد. چندوبین بار وقتی این صدا آمد امام حسین علیه السلام متوجه شد نگاه کرد به برادرش ابالفرد فرمود برادر جان برو ببین شمر چی میگوید. گرچه آدمی بدیست ولی چون از نزدیکان و از اقوام مادرت هست برو ببین چی میگوید. ابالفرد همراه برادران رفت به طرف شمر گفت چه حاجت داره چه میخوای بگی شمر گفت شما متوجه باشید که لشکریان کوفه و شم هم جمع شدند بعد از دقایق جنگ سخت روی خواهد داد همه اطرافیان حسین کشته خواهد شد من برای شما و برادران که خوهرزادگان ما هستی اماننامه آوردم اینجا ابوالفضل چه کار می کند؟ روحیه مسئولیت پذیری و پیروی از رهبر ربانی رو در اینجا باید مشاهده کرد ابوالفضل علیه السلام چی جواب میدهد؟ دهد؟ آقا می فرماید خدا لعنتید کند با این اماننامه اد برای من امان نامه آورده تا من در این دنیای ناپایدار و در این دنیای بی وفا چند ثبات را بعد از حسین زندگی کنم خدا لعنتت کند من رهبر ربانی چون حسین نواده پیغمبر رو کنار بگذارم بیایم از شما بدان خیروی کنم و شما نانجیبان رو به عنوان رهبر برگزینم خدا لعنتید کند با این امان نامهد من و برادرانم در این دنیای ناپایدار در امانم زنده بمانم اما نواده پیامبر در امان نیست زنده بماند و باید کشته بشود پیروی از رهبر ربانی حس مسئولیت این است اینجا جوانان آشرایی خوبان آشرایی بزرگان حسینی این گونه درس می گرن. از رهبر ربانی پیروی می کنن. جوان 13 ساله از شما می شناسید در شب آشورا به محضر آقا عبدالله عرضه می کنه آقا جان من همشهید می شوم امام اول نوازشش می چون بعد از این سوال میکند که مرد رو چیگونه میبینی ارزه میکند آقا جان شیرین تر از اصل برای من هست بعد اما سلام میفرماید بلی افراد دیگر هست، اصحاب و یاران هست در همین شبهای هفت و هشت هست حبیب ابن مظاهر و محضر محسین علیه السلام سلام میرسد آقا جان در این نزدیکی کربلا آبادانی است که اقوام من در اونجا زندگی می کند اجازه دهید بروم آنها را به یاوریت فرا خانم امام علیه السلام اجازه میدهد حبیب ابن مظاهر میرود بین خیشانی صحبت میکند کند شخص بلند جواب میدهد و آماده می شود و طی هم و یک جلسه بیش از 90 نفر آماده می شود که به دستگاه امام حسین علیه السلام بپیوندد اینها شبانه حرکت میکنند ولی متاسفانه جاسوسان به دشمن خبر دادند و راه اینها را کمین کردند تعداد اینها را کشتند و تعداد دیگرشان پس برگشتند به خانواده هایشان و از پرس شبانه کوچ کردند حبیب ابن مظاهر خود را به سختی دوباره و از خوابمون حسین علیه سلام ملحق کرد این همون روحیه مسئولیت پذیریست و روحیه تحرق پذیریست برای جامعه آشرایی و جوانان حسینی همینطور هر جا نگاه کنیم این روحیه هست آفرین با اون جوانان و با اون خوبان که این روحیه ها را برای خودشان زنده نگه می دارن. و همینطور هست که در سخته ها نباید لغزید و باید از اسلام و از ارزش ها دفاع کرد ولو با تمام شدن خونمان بیانجامد به شرط که این خون هدر نرود و با معنا باشد و راه همچون راه حسین به گونه انتخاب شده باشد که این خون خودش احیاگر باشد این شهادت خودش زندهگر باشد این است جامعه آشرای. امروز که روز حضرت آقا اب الفضل عباس هست جانها فدا گردد برای این مولا در غرب کابل که سرزمینه دار المؤمنین هست، اونجا چه غوغایه بود؟ یک نوحه گذاشته داخل موتر هست، مردم صدا می زنن جانم فدای اول فرد یک علم رو از گوشه موتر بیرون کرده همینطوره به شکل دسته حرکت می کند. اون دیگری که موتر آب دارد در اطراف موترش بیرق یا عبدالله نست کرده نفر هم بالای موتر نشسته بیرق یا عبدالله الحسین بالا کرده یعنی امروز اگر کسی تشنه است، این موتر و است که اینها رو سیراک کند جامعه آشرایی اینطور زنده هست تحرک دارد در سختیها ها هم نمرده است و نخواهد مرد صلى الله عليك يا ابو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتواصلنا بك الى الله وقدمنا بين يدي حاجاتنا يوم یه حوان لن الله شب عاشورا است الله دت علی نقل خردان شب عاشورا اول فات نگهبان خیمه‌ها بچه ها و اطفال حسین وقت صدای پای ابل فضل رو میشنون. آرام میخوابن راحتا آرامش دارن امو زنده است امشب ابل فضل نگهبان خیمه ها دل شب است. سیاهی نمایان شد این شیر بیشه یعنی دستش را برد به قبضه شمشیر صدا زدائی سیاهی کی هستی خودت را مرفی کن و ایضافونت خواهد شد مگر نمیدانیم شب نگهبان خیمه ها ابل آه این سیاهی که از, از در نمایان شده است زینب خواهر ابل است. زینب گریه می آمد نزدیک شد صدا زد اول فرد خوهر از زینب اول فرد می صدا می زند خوهر تو چرا در اندلشن زینب سدازد برادر امروز نوم محرم شنیدم برایدم آن نومه صدازد ابل فضل صدا زد زینب صدازد زد شب بس یکوم رمضان رو دریاد داری ابوالفاضل صدا عزتوار خان جان زینب صدا زد برادر وصیت بابار دریا داره که فرموده بود عباس من در کربلا نیستم هوش برادر دست رو مزوری عباس صدا زد بله خرجون زینب صدا زد برادر آیا به امان نام پاسخ مضبط میدهیم یا از برادر حسین